اعتقاف خانوم ها در مساجد و مقاکب جائز هست یا جائز نیست فصل اعتکاف حالا برای اعتقاف داری میرسیم حالا این مسئله اعتکاف را طبق احادیث و اقوال و اجتهادات فوقهاد چگونه اجتحاد کرده اند حالا باید بگیم که چون الان با آب و طاو خانوم ها دارن نامنویسی میکنن سبتنام میشه و انشاءالله با هم جنبشن پنجات خانون در یه اتاق برن با هم اتکاف کرد حالا چی میشه اونجا قبلا تعریف کردم میگه هر نفری پونسار هزار تومان جمع کرده حالا ده روزی ما اعتقافی پول هم میبرن برای بخور و بخوابه بخت پزن و انشالله فراوان آشپز هم دیگه باید بپزند و بخورن و کسی دیگه اونجا نیست خوب اتکاف کردن خوبه یک امر الهی هست و یک حکم شرعی هست هم برای ها خوبه. هم برای آغایون خوبه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هر سال ایتقاف میکردن تا وفات معتقد بودن. سالی که وفات فرمودن 20 روز اعتکاف کردند. چون سال قبلش، سال اولش ایتقاف نشسته بودند. پس بنابراین در سال آخر وفات 20 روز اعتکاف کردند. این حدیث داخل صحیح بخاری میآید. اول چند تا حدیث میگیم بعد احكام میگیم. حدیث دوم دو هم داخل صحیح بخاری در ابتدای کتاب اعتکاف حدیثی آورده است که می‌فرماید که نبی مکرمین سلام صلی الله علیه و آله معتکف متوافاتش و اعتکف ازواج او بعده بعد نبی کریم فوت کردن ازواج متحراد اعتکاف کردند بعد نبی مکرم اسلام الله می‌فرماید و انتم عاکفون فی المساجد در مساجد اعتکاف می‌کنند پس طبق این حدیث که صحابه کرام نبی مکرم اسلام کردند کردن ازواج متحرات بعد از ایشان اعتکاف کردن پس اعتقاف هم برای خانم هست و هم برای آقا اعتقاف هست برای هر دوتا اعتکاف هست و الله فرمودن که در مساجد اعتکاف میکنن پس بنابراین اعتقاف برای هر دوتا درسته اما آیا خانم ها یعنی این سنت اعتقاف برای همه هست اما ای خانوم ها مستد تشریف بیارن و مستد اعتکاف بکنن این چگونه هست یا در مکاتب همین اول بگم همین اول بگم، چون شاید توضیحات گم بشه اون جوابی دنبالش هستی در مکاتب اعتقاف برای خانم ها مشروع نیست چرا مشروعی حالا دلاتر توضیحات رو میگم این اول میتون چون کسی میخواد این دواره سلام ها بشمیرسه گوش کنه از اول خاطرش جمع که جواب همینه برای خانم ها در مکاتب در مشروع نیست مساجد نمیگم در مکاتب مشروع نیست حالا خود تحقیق مسئله حدیثی از صحیح بخاری میخوانی و توضیح میده داخل صحیح بخاری کتاب العتقاف که قبل از کتاب البیو آورده پایان کتاب الصوم حسین حدیثی هست که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه و سلم در مسجد و نبی اعتقاف کردن یه خیمی در مسجد برای خود درست کالا چیزی که پرده که زده میشن این پرده هم سنت نبی کری این استفاده کرده با حسیر درست شد داخل مسجد و نبی اعتقاف کردند بعد از نبی مکرم اسلام حضرت صدیقی آ... کبرا آیش صدیقی رضی الله تعالی از نبی مکرم اسلام استازنه اجازه اج اجازه گرفتن رسول الله که من اعتقاف بکنم یا نه؟ اجازه فرمودن بله بی اعتقاف بکن. خیمه حضرت آیشی هم نست شد. با حضرت حفظی هم اجازه گرفتن اجازه داد برای حضرت حفظی هم. پس اجازه گرفتن اجازه داد برای حضرت حفظی و حضرت آیشی. وقتی حضرت زینم مشاهده کردن که اتکاف داره شروع میشه و دارن ازواج متحارات خیمه هار نصب میکنن برای خودشون، یشان هم بدون اجازه خیم خود را نصب کردند صبح نبی کرد خیمه بیرون شو برای امامت مسجد نماز جماعت دی این خیمه ها چیان اینها چیان فرمودن که وارد متحره فرمون آل بر ری ردن آل بر را آیا نیکی رو میخوایی شما مگه نیکی همینه اعتقاف کنید این صحیح بخاری هست آل بر ری ردن بعد فرمودن که من اتکاف نمی کنم کنید از منو جم کردن خیمه نبی کریم را خیمه را جم کرد اتکاف و شکست اتکاف نکرد ازواج متطهرات فرستاد به خونه هایتون بعد شوال ده روز اعتکاف کرده قضا اتکاف خود را در شوال گرفتن اینجا خانم ها رو فرستاد اینم حدیث صحیح بخاری پس اینجا اول ازواج متطهرات رو خود بگیریم اینجا ازواج متطهرات اول اجازه گرفتن اجازه دادن این وقتی که اومدن همه ترمودن آل بیر رویدنه مگنی که همینه نه اعتقاف و شکست و خودشون تشریف بردم و رو هم فلسطان بری خونه هایتون اعتقاف نکردن حالا اعتقاف تبغی این حدیث اول از امام شافعی بگم طبق این حدیث امام شافعی رحمه الله دو قول داره یه قول قدیم شاست یه قول جدید و قول قول ای قول این است که اعتقاف خانم جایز نیست الا فی مسجد بیتها مگر در مسجد خونه اش اند داخل خونه که جای همیشه نماز می همونجا اعتکاف میکنه این قول امام شافی قول قدیمش است و قول جدیدش که امام نووی اختیار کرده میگن که در مسجد اعتکاف درسته حافظ ابن حجر رحمه الله همون قول قدیم را در فتح الباری ذکر کرده اند که امام شافی میگویند که اعتقاف در مسجد نه در مسجد خونه اعتقاف بکنه امام احمد ایمد حنبل می که اعتقاف خانم در مسجد درست به شرطه که زن و مرد اعتقاف باشن تنها خانوم نه زن و مرد با هم بیرن اعتقاف بربر تنها میگه درست نیست این قاول امام احمد ایمد حنبل هست قول امام آزم امام ابو حنیف رحمت الله علیه حالا امام آزم امام آزم هست دیگه. چون امام اعظم استادهای همه هست استاد امام استاد حضرت امام محمد و امام ابو یوسف که امام محمد استاد امام شافعی و امام شافعی استاد امام احمد بن حنبل اینجا امام اعظم چی میگن امام اعظم رحمه الله میفرماند که اعتکاف خانم در مسجد مکروه هست خانم ها در خونه ها اعتکاف بکنن حالا این قول اولی هست که در کتاب الم کتاب اصول در ظاهر روایت اهناف این قول آمده این کتاب اصولی احناف همین چیز درست اما علمان چند کتاب عبارتاش برای شما هم حواله بدن یک کتاب نام البدایه کتاب البدایه بدایه الصنایه في تشریح این کتاب بدایه الصنایه در باب ال اعتقاف اللام کاسانی رحمه الله اللام کاسانی یک عالم عجیبی هست این نکته موردی عالم هم بگم که خالی از لطف نیست ال کاسانی رحیم الله یک کتابی داشت یکی از علماء ب نام توفت اللاما توفت ها کتابی نوشته بود این عالم بسیار زبردست دختری داشت خیلی زیبا همین این عالم که پادشاه وقت خاصداری ر پادشاه وقت برای خاصی دختر این عالمره گفت که من دختر رو به اقدت نمیدم. دکتر من به تو نمیدم پادشاه نمیدم. الما کاسانی اوم. شاگرده شد توفت الفقهار و شعر داد با داستان آئی رو نوشت کتاب این قدری هست وقتی شرحش داد استاد دختر بهش داد علماء نوشتان که شرح توفته زود ابنته توفر و شهر داد توفه بعدی رو بود این عالمی بود که کتابش در دنیا بینظیر هست که شخصیتی مانندی علام کشمیری میفرمایند که اگر کسی بخواد فقیه بشه باید این کتاب بخواد فقیه میشه. بعد شریعت درک که میپینه تو اینها دارن خوب و شریعت کار میکنن علامه قاسانی رحمه الله در مورد اعتکافی خانم در مسجد دو تا قول آورده می که یک قول در اصل کتاب اصول احناف آمده یک مکروه و در کتاب یه روایتی که حسن ابن زیاد از امام اعظم آورده که جائزه بعد علامه قاسانی میفرماید که بین این دو قول بین این دو قول اختلافی نیست در اعتقاف خانم در مسجد افضلتر در خونه, در خونه افضلتر اولا هست در مسجد اگر رفت راه دار جواز دارد کتاب هدایه هدایه در کتاب هدایه موت مشهوری هست که خونده میشه اونجا آوردن که اعتقاف خانم باید در فی بیت فی مسجد بیت حواشه در مسجد خونهش نه که مسجد محلی یعنی خونه جایی که نماز میکنه همون اتاقی که نماز میکنه اونجا نماز دکھون دیم کتاب بعدی المبسوط کتاب المبسوط سرخسی کہ شمس الائیمه اللہم سرخصی رحمه اللہ نویشتی ہیں کہ عجیب تفسیری آوردی آن اللہم رحمه اللہ می فرمایین کہ اعتکاف خانم در مسجد مکروح از کراحیت ذکر کردی چرا میفرمایند که کہ که نماز برای خانم کجا فضل ترے حدیث داریم حدیث صحیح داریم نبی کریم که نماز خانم در خونه ای که تاریک تر باشه افضل از اون خونه تاریک نسبت به حال خونه تاریک افضل نسبت به حیات داخل حالش افضل نسبت به بیرون حیات منزل افضل پس به همین صورت اعتکافش اعتقاف خانوم در خونه افضل هست نسبت به مسجد یا جای دیگر تبر این حدیث و بعد امام علامہ سرخسی رحمہ الله همین حدیث که از بخاری خوانده همین حدیثو و جلات ذکر میکنند که صحاواتی از واج مطهرات آورده آل بری یریدنه دنبال نیکی هست نمی نیکی این است پس میفرمایند که کراهیت داره اما مسئله اقرا جواز هست کتاب بعدی الدرر المختار الدرر المختار یک فتاوای مشهور احناف است که اینجا هم می که اعتکاف در مسجد مکروه هست اما علام شامی در رد دلمحتار شامی در رد دلمحتار تعلیحی زده میگه مکروه هست اما مکروه تنزیهی هست که این تفاصیلی که اکتاب معتبر احراف گفتم قول کراهیتو نقل کردی اند بگه مسجد را جواز دادی جواز یعنی خلاف اولا هست افضل همون خونه ایش است هم جای باشه هرگز اختلاط نباشه راه جداگانه باشه زیرزمینی باشه اصلا با هم دیگه اگر اختلاطی نباشه اگه اختلاط باشه جایز نیست باید کامل جدا باشه اونجا جواز داره نک که ثواب ثوابش خونه است نبی کرین، اونجا خیمه ها رو برکند و خودش اعتکاف خود را شکستن اگر خانوم میخواد اعتکاف بکنه پس خونه اعتکاف میکنه اما گفتی یا خونه یا مسجد در خود اسلام مکتب هیچ جوازی نداره چرا جواز نداره بخاطری که خانوں باید اعتکاف کجا میکنن اعتکاف محل نماز میکنن جای که نماز میخوانن اعتکاف میکنن مرد باید مسجد نماز بخونه و بعد اعتکاف مسجد میشینه اعتکاف بران تو خونه جایز نیست اگر آقا بگه من خونه اعتکاف میشینم همراه با خانو توی اتاق اعتکاف میکدیم جایزه نه هرگه جایز نیست پس آقا کجا محل نوازش کجای همونجا اتقاف بکوره خانم کجا محل نوازشی همونجا اتقاف بکوره محل نواز خانو مكتب نیست پس وقتی مكتب محل نوازشی اتقاف اونجا هم معنا داریم اتقافش بعد خونه افضل تر هست. حال وقتی که میخواید این هم دلایل اینم احادیثی که برای شما از صحیح بخاری خوانده کتاب دیگر هم خواندن که حالا دنبال سند بگردی حالا ضعیف است و ز... یا به اصطلاح صحیح است صحیح هست و اشکالی در حدیث هم وجود ندارد اعتکاف سنت هست از واج مطهرات بعد از نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم تا آخر ام اعتکاف میکردند اما اعتکاف اونها استنباط این استونه بوده مسجد نبود چرا استنباط این است چون حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ان خانمها رو از رفتن به مسجد من کردم فرمودن خونه ها نماز بخونه نماز شما خونه ها افضلتر است و حضرت آیشه فرمودن اگر نبی مکرم سلام صلی الله علیه سلم زنده می بودن خانمها رو از رفتن مسجد من می کردن می گذاشتن خود حضرت عایشه ایچیز رو فرمودن پس که گونه مسجد میکنه مسجد اتکاف نکرده پس خونه اعتقاف کرده تبک این برداشت. پس بر بازم به اجازه آقا باشه تا زمان اگر آقا اجازه ندار اعتقاف نمیتونه بشینه باید آقا اجازه بگیره چون حق, حق آقا هست و اعتقافشو باطل نکنده پس بنابراین اگر خانومی معذور بود خانومی معذور نمیتونه اعتقاف بشینه اما اگر معذورت استحاضه داشت استحاضه داشت که بیشه خون مستمیری داشت میتونه اعتقاف بکنه یکی از ازواج متحراش مریضیه به اسلام استحاضه گرفتار شد. زینب بنت رضی الله تعالی عنها بعضی ام حبیبه بود حال در حال به بعد در محل اعتکاف می کرد زمان نبی کریم صلی الله علیه و سلم. و بعد این است که پس اگر خانمی پاک بود اعتکافو شروع کرد و هنگام اعتکاف عادت شده انجام اتکافش باطل میشه تمامش اتکافش. اما اگر مردی در هنگام اتکاف معذور شده و جنابت در او آمد اعتقافش باطل نمیشه کسی که اعتقاف میکنه حق خروج از مسجد را نداره حتی برای غسل کرده روز بری همم بیایی که مالا گرمیشه عراق کردی حالا اول خود را خوب بشورید تا یه هفته دیگه در روزی هم بو نگیرید حالا بری مسجد اعتقاف کنید داری کولرها بو نمیگیرید اما برای غسل تبرید که ما غسل میکنید تنظیر جائز نیست بری بیرو نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم طبق حدیث صحیح بخاری کتاب الاعتکاف وقتی سر وارک مبارک می نشستن سر بیرو میکه از حجره بیرو نمیرا خودش در حویج از عایشه میبردن حضرت عایشه سر نبی کریم رو می شستن و شانه میکردن خودش بیرو تشریف نمیبرده پس شما هم وقتی نبی مکرم اسلام برای نظافت برای خونک،, خونک کردن، غسل گرفتن بیرون نرد، شما هم نمیتونید بیرون بری مگر در حیات مسجد، اگر کسی داخل مسجد باشه، اونجا باده اتاقهایی که دارند رسمی میکنن اتاقه جز مسجد نواشه، نمیتونید داخلش برید الا برای نیازه های ضروری، اوزو هست به غسل گرفتن، یا غسل واجب شو برای غسل کردن یا کسی دید غذا بیار برای غذا خوردن میتونه در میتونی رفتن از مسجد بیرون برای هیچ کس جایز نیه اعتقافش باطل میشه ولو برای یک لحظی هم باشه پس اینجا دیگه صف نگیرید ما میری اینجا وزو خانه میگیرن حالا داستان تعریف میکنی نشستی همونجا دیگه کم کم میری اینجوری درست نیست حتی برای غسل جمعه بعض علمان میگن احتیاط بکنی و بعض میگن میتونی هم احتیاط بکنی من میگم احتیاط هم دوباره هم احتیاط